باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك اني نسنده كتابي تشتهي من جمر نسيني حجر الكرياني شو بدنا علي گمار کردندی دلیر سلیم. گگرانی ازیز خوشیست صلاحتن لب خوش حالین ال بچی نوودی خود نویکتی بیچیش تیم جهواری حجاری مکریانی حتی نوالتان فرمون لگالمان بن. حجر مکریانی لبرداومی گرناوی دشت و ایرانو بمشویه با من بس دکم. دوایشان روز ل نقد و رجل بارزانی کوتمو مو هات مو ترند. امجره ل میدانی تجیریش ل مالک بون که اویش هر سر بس بو بود. رجانه دجل حمی عزیز شش ساعت با پیاده خیابانی ترند من گذد کرد. نکار و نبر اجازه مورگرد بتم و سری مالو من دلم بدام امانی و تی له مهابات شو ناس نامه خوت ورګراوه چو پناهندګید لیدستن مو چمو شاعران به خیال کشک له پشت حوران دروز دکن بلام نه تیاب جین من اگر چی همو جیانی خوم دارند بو، بلام دم گود خلقی سابلاغ لیم رونا او همو من دو بونو جیان بفیروچونی منیان هر لبرچاوو رنگ زورم حرمت گرن. بلام توا پیچوانه بو، هیچ کس نیدویره تنانت جوابی سلاویشم داتوا، چند کسیگ وک سعید خانی همایون، خالمین، یوسف اورامی رامی جاریوا بو دهاتن سریان دادم، کلمالش در دا چوم دا چوم دواخانی ایوبیان که خزم بون یعن سرم لاکتیب خانی خلیل موفقی ادا تنیا دو کس هبون کمنیشو سعید ناکامیش دا چوین دوکانیانو بروی خوش شوا دین دواندین حاجی مطلبو ماموستا محمد شوشفروش یک دو جاریش چوم دوکانی صدیق حیدری لشارو خلککی طوابیگانه بوم. ناچار هر لبیانیوه تا اواره لسربانی مالی سید اولای کولیجی دادنیشتمو دمرانی کولانو دمچم. پیوهق بله حمدی کریمی باش بو. هاتو چوی دکردمو من دالکنمی با ترانبیلی خویده یره. شویږدهات مو مالک کلیجی ل پښتو یک یک بانجی کردم جعفر کریمی بو کله زمان کومل ده زور آشناین زیګ بوین گوتې به بخښه کنه هات لمال نبوم، گوتم، کاک جعفر خبرم هیا لمال بوی، بوې چا وشم لوانې ته بمناسی حمدی براد برا لای من روزرت کردو کډویرې بم دینی توشي کسانیک دبوم لسر خیابان دوستی قدیمی بون بچاو سلاوی اندکردو زوتیه دپرین همو کس لای وابه هر امر روزانه من اعدام دکریمو او انجبته متي سلاوله کردن توشي بلاابن براستی زگم بوانش دسوته هر پیم خوش بو زو صابلاغ بجیبالم شته کیش که زول لبر دلم گرنده حد دم دی هیڅ صابلاغ خور بکرد زانینی سروبنی هم قصان، له موشونان، سفت و بانکو فرشو نقدی نبود. سابلاگه که مرکزی مر و مالاتو و روانه، ماستی خطوی توریز اندکری. هیچ و کردستان نده حتی برشاو. رفیقی سابلاگم، هر آو عراقیان بون که مالیا هاتبو سابلاگ. دګل اوان د چومقاوه خانو ګران بیان یک لخوا هستم وتیان جندرمیک له اګاهی شربانی او حاتبودواد عبد الله برامو سید عبدالله الله کلیجی وتیان امش دا تا دین من وتم ناکاکا خم هم د چم بزنم چی دی کبره چې کورد رئیس اګاهی دستی په پرسیار کرد. وتی پمبلای ناوت عمره توختي خوای کومونیست بو هی حالتوی لوخسانه گوتم. تو كردي سابلاغي؟ قلت باله. قلت کاک خوتنا باو كد دعي كد قد بويا نجير راويا وكا كومل هبوا قازي محمد هبوا داواي استقلالي كردستان كراوا قلت نا نم بستوا وتم حزم دا كرد بستباد من داواي دا بجبوني ایرانو ايرانو استقلالي كردستانم كردوا قلت هنده خويري نبوم كومونيز بم قلت تو لدويني وحاتو يا سابلاغ با خبرت به شهر بانی نداوا لوکات دا هرچی دا و جواب ادامو دینوسی. نوسی گوتم دوی نیه منو حوت روژهاتو موا تو به همو زیرکی خود دوی نیت پیزانی و کچی مالکشم لنزیک شهر بانیه تی بینا اوان بکا خند موا نی نوسی با حوت روژهاتو داوا گوتم تا ننوسی امزای نکم دا بی دولت بزانی آگاهی چنوریایا جندرمی کی بو پروندو د گلناردم بو ساوا کبنو بازار د تیپرین لساوا کابره کم دید بناوی تو سرګانی هر منی دید ملي با جندرم کنه وتی آی واشیدان هناو کیغه تو یا بی هنن تلفونی لا اغاهی کردو چن جوین کی به وجدا وتی بر شرف من من کوتو واقاش مان له نه بو تویان بان کردو تویان هنه وته ارا من شوتم اغه تو سرګانی من هند ساده نیم و شرفت اگر ایوه داواتا نکرد مایا آگاهی کساگی خو تان حدی حد نبو بانگم که استابو چیتان هیناوم آخر سیادیان وقت تو سویندی خوارد که کس باسم نکه و تی بحزاران سویند بمليونان قرآن نماغام علی نبو بلام که تازهاتوی چند پرسیار اکد لیده کم اگر پید خوش بو جوابم بدوا عبدالرحمنی قاسم لو داناسی بله برادری کی خوش شویست ما ام اللا چ درسی فارسی داله وانی ها دیاره خود نای ناسی او پیاو نو زمان دزانی. درسی اقتصاد سیاسی به چیکی داله تاو باور ناکم چونکه که حزبکه ملای نوشکری تی دایا. سیدی تی دای رنگ ملی بی زور باشا حمید خسروی دا ناسی بله او دو مانگا گرتو تانو لا تنوی از جاسوس روسا نه او حمید خسروی ها چون پیاوی که باور پولی خیلی حمید خرید بکا تا جاسوسی پی بکه حمید لباعزار برالله که مالکه خوی پی نزنده تو. زور باشه زور باشه دکتر مرادی رزم عواری دناسی. بله. او باید به جاسوسی جوری رسان بیه زور زیر کم. بالامل نیوان آلمان و موسکو ده هاتو چه دکاو جارو بارش دیت بردای. تو پیت خوش لسابلاق بی کوتنی خود تا. حس کم لچه بهار بم نک ام هینانم بو ساواک د زانم بوچی به هزاران پیوی بیکار هې نانی شوی دسنا من یان کلکټیب خانه دیوا یان لدوا خانه په پلای کې کاتو تلاد وتو ته هزار مدید صلیابې اندې کړت توش رنګ د تمنه کټ مجددا بني همو راش طاقت مې به مساوا کو بلایب کنه کوم بو متهاو کارت هر استاد سملی سیادانو به زنم بوچی قولی دا کا کاری پم نه به دروي کړې اې دی تازه او خانومه ندیتو دا وای نامم کردو و چن جماره چن بو خوشک موتی ککم پیش و جماره 1652 ای دی شوناس نامی خو مندا لکنم سنت زور روجان د چوم نغده و د بو چن شوی کی د مامو جاره کیترل سابلاغه و حتمو ترن نسیری حتله ملع مصطفی بخیرتنی منی کرد بارزنی پیوت هجار در من و تا با کاری که به پی بژیو نبیه، لخوشم دورکوه تا تو. گویدی؟ بله، خانویی که دا دینیه لنزیگ تو باید. بلان بیرد نشه، شهر فرموی پرونده و اگر مخن، ایم نتوانین کاری به دینیه، بلان با خاطری تو او بو خوی حوالی کار بدا اگر لیمه پرسیار کرا، دلین موافقین، خود در سپوری جادش به موافقات ایمه دا نمزره. ایدی دواتر من چوم ماله که هر ساواک با دکتور شفیق قزازی کرده شاخوانیش که مهاندیسی که هر لوی ده جیا. حقی نستنم نه ادا. ماویگ و ماموه نکر نبر کر من سینما و شو تماشای تلفزیون بو. پش ماویگ دکتور شفیق درویشت حت نصر من که ام ماله چول شفیق نو ماله که خوی جگه لتلفزیون و ستوری و یخچال شتی با قیمت که فروشت نی داب من که من مالای مالای اوانم برده جوریه که و کسی اک ها بو که چند پیش مرگه بو زوربش تکنی لیده زی بوم داخم ناچه که شعرو چند یادشتی که منیشی ده زی بو نیده خریق بو خانو بو برزنیو و حوالانی پیدا ک. چن شوی نکمان برزنی رازی نه یک لوانه nå عمارتی که جسافرت انگلیز ل شهاباد بو ل بنچیای آلبرز که خورم کربی بود دسکریت یاد داد کرد خورم دی ازربایزنی که زبری قامک استور که دیانگود ل فعلی و بوته خوانی میلیون ها میلیون که هاد آمانی پیگود دمانو ام خانوت لبکرین گو تی خدا شاهیدا منو کری شاهیم گوتم امانی به حیات خویق سای کرستی کرد امانی زور پیکنی چوین سری پارکی خورم که اویش ملکی خورم بو که هتین بروین خورموتی مروان دنیارم کوکاتان که تان با بینن برزانی فرموی پولکه لگیرفان داب مین باشتره لگو هر دشتی کرج زور خانویان نیشنده این برزانی قبولی نکرد آخری بریاردرا لعظیمیه کرد چند خانوی اک بکرنو تیدا ببینه پنه هنده. وقتی لخانوکی دگل شفیقیان راگویستین، آغای مبینی نوی سواکی که لدویک را به استانداری ورمیوتی تو لأوتیل دیا موند داد دا مزرینین لسر حساب خومان. شویک لبیمام وقت لطویلا دابم بیانی بکاک محسین دزاییم گوت که کاروباری ایم ایم اواره حوالان برزانی بره ودبرد که که نشو چوار دینر حقی خوام با بدم نهیچ ملیتا چو ملای رسول ابرام پتو یکو بر هیوانیک ایتر لمنتی ساواک حساموه خراب نیا باسی رسولت باب کم گوتم دایی که براو خوشک کنم سالیک دوی مرگی بابم میردی به سید حمده منوی کرده و کورده مالک کی ترغبو. رسول برام بو رسول ابرام لو سید ابو دایی کهر بو میردکی لیوارز بو هنمو لیخوم لبو کن رسول من داله که زور چکواله بو که بجمهشت لسالانی ا روزیک لحاشکه برای وقتی معلمیک لسهرداشت زوری یاری داده این دلیل برای حجار مونام رسول قادریا خواه شکر رسول جیو تیا و بوت پیاو ل آذربایجان و دور خراب وو ل بو بب و معلم او من کهات مو تران ل آپارتمانیک داده جاو معلمی دکردو کردبو ما خانه خی خام ملات جمیل راج بیانی کباسم کرد دوستی زور لمان جینامبو. هر لبغدادم ناسی امناسی. ل عربی و کردی و ترکی زور نصری چکه. ل همدان هات بو ترند. قولیان پیدا بو که بیکنه ماموستای دانشگا بالام درویان دگل کرد بو. ل رادیوی بروان مرزی دامزربو. هرچن با ملا مصطفیان وتبود جیتویا. بالام هر خوشم دویست. شمسه دین فقی بنای امیر خاسمی ل ترند وکیل بو جرکات حاجی امران نامه کم دایه با ملاجمیل، دعاو صلاو احوال پرسی، نامردی کرده بو، با برزنی و تبو هجار استاش دگل ملاجمیل دوسته، برزانی لی پرسیم، گوتم بالی نامم با نردوه، من ملاجمیلم زور خوش دوه، چون که زنه کی گوره یو، فرقی دگل ملانی کرد زوره که هیچین هیس نازنن، دو نسخهش شرف نامم با نردوه که یک یعنی ده بو به دانشکنده ادبید، هرکه زور ده چومه منزلکی روشی جمعان ده دا چوینه بو بسیرن پیک و چندجار چوینه دولی جالوسو ورامین قرار دره کمالکم بین مکردجو لبرزانی نزیک بم چومو سابلاغ داگو چند مال عراقی که لناغده و سابلاغ هاتمه کرده لخانو یک دا استایت استایتی دام دام زرام داگل ملا جمیل کوتی نکار پیدا کردن بومن عریزه کم نوصیب و ببی اون نوی کس بلیم من که ناومو شورتم فلانه عربی و فارسی و کردی ازانم اگر کار یک بیده کم داگل ملا لزور درگم انده کس گوی بکلاو من نپیوه روژ جیک چوینه اداری خانلری ک شاعری مشهور ملا جمیلوتی ام که توش نظمت کردو و کردوته کوردی گوتی ادریس ندنی کاری کی بو ادو بخوا اویش هیچ لیشین نابو علی خانی سیفی قازی لکرت جیرانم بو روزی گوتی لکوبنوی کی ادیبان چاوم بجعفریان کوتو و تو ما پیوی کی و شاعر کوردا يا گوتی حز دکم بیبینم. دگل یه چوم به نشانه که کدرابو با علی خان گیشتما جعفریان هر لره با عربی قصیده دگل کردم عربی با لحجه لبنانی زور باش دزانی زور شارزه ولاتی عربان بو بسی زور لشاعران و نوسرانی عربی لپرسیم عریزه با عربی ناوکم دایا گوتم آغای جعفریان عرب دلیا پیا لسریتی با قازان خوی حول بدا بلام زمان لسری نیه آوات پیگ بینیه که آوشه عربی جو تی باب زانین بالکو آمجر ججی خویگرت به در کوتین تلفونی بوم معرفت‌آبی کرد بو که تیبک عربی بدنه به فارسی ترجمه بکه لسر بیری ملاجمیل قرار کرد تاریخ سلیمانیو دوربری که آمن ذکی به کردین نصبیو ملاجمیل ل بغداد کردویه به عربی ل عربی و بکمه فارسی بو کامجر ل تراندستم ل کاریک بند بو کمان گی 2008 بدنی ل خواب زیاد به روژیکي د کملہ جميلوتی و رپیکو ب چینای جعفرین و توي هر دو تنور نه لم جری پی شو هر به عربي دواندمی پی ام وو امتحان مدکه راست عربی د ام جار به هر دکماني د دون پرسی او کبره او رژه د کملہ تاتب چبو غتم ممنونی او مکتویب من ناسان غت زوري لترسم بو هر به عربی دواندمی نو وکه شتیک مان لسربنوسی گزارش بده دو هم با دو من بو مانگی دوهم معشکم کرا به 2500 تمن بل عمدیسان زور کمبو به شهیچی ناکرد گگرانی عزیزو خوشویست، لیره داوبم شویا، حتی نکوتای بشی نوادی خیل نو اکتیبی چشتی مجوری هجاری مکریانی، تاشوی کتر و لبشی کتر دا پیتان دگی نوا شوتن عرام و بختوار و شدو من بن.